رضا بدید یک قذل سعدی بخوانم من همیشه در خطاب به پیانبر و در نسبت با ایشان وقتی که متوجه میشن و مواجه میشن با حضور ایشان این قذل سعدی رو میخوانم که اکنونم برش شما میخوانم و سخنم رو بکایام میبادم تا آنه ای که دل از صحبت تو برگیرم اگر معلوم شدی صاحب دگر گیرم اگر به قهر برانی، طریق رسبن نیست کجا روند که یار از تو خوب به اگر بزنی بی و برگردی چون این باز کنی دوستی ز سر روا بود همه خوبان آفرینش را که پیش صاحب ما دست بر کمر گیره قمر مقابله با روی او نیارد کرد وگر کند همه کس عیب بر قمر گیرم خدنگ خوبان، خطا نمی افتد اگر چه تاگفه ای زود را ستر گیرد. به چند سال نشاید گرفت ملکی را که خسروان ملاحت به یک نظر گیرد. به سال که میسر نمی شود سعدی مگر که راه بیابان پرخطر گیرد.